این داستان استاد کوبلرسال استاد کوبلرسال مرد ریزنقش و استخانی و پرکار بود. به خاطر تحرک و فعالیت زیادش جای بند نمیشد. بینی اقابیش تنها عضو برجسته مشخص صورت پرچین و چروک و رنگ پریدش بود. موهاش خاکستری و زبر بود و چشمای کوچیکش با نگاهی نافذ به دنیا نگاه می کرد. اون به همه چیز توجه داشت و از همه کس ایراد میگرفت. از همه چیز سر در می آورد و به نظرش می تونست هر کاری رو بهتر از دیگران انجام بده وقتی استاد کوبلرسال در خیابون راه می رفت چنان دستاشو تونتون حرکت می داد که یه بار دستش به ظرف آبی خورد که دختری روی سرش گذاشته بود و همین کرد ظرف افتاد و آبا روی سرش ریخت تازه استاد چیزی هم طلبکار بود و سر دختر فریاد زد مگه چشات کور او نمی بینی که من پشت سرتم کار اصلیش کفاشی بود وقتی کفاشی میکرد چنان تند و محکم نخها رو با دستش به این طرف و اون طرف می کشید که هیچکس نمی نمیکرد بهش نزدیک بشه. رفاقت اون با همکاران و همقطاراش هرگز از یک ماه بیشتر نمیشد. چون مرتب از کارهای این و اون ایراد می گرفت و برای همین رشته دوستیش بیدوان بود و زود از هم می گذست. اون از بهترین کفشای اونا ایراد می و میگفت دوختش دختش ناجوره یه لنگه بزرگتر از لنگه دیگه است پاشنه یکی بلندتر از دیگریه چرمش صاف و مرتب نیست قوی یکی از جوونا رو صدا می کرد و میگفت: "صب کن، میخوام به یاد بدم که چطور پوست و سفید میکنن." بعد تسمه می آورد و اون روی شانه های قربانیش مینداخت. اون همه مردم و تمل و بی‌خاصیت مینامید. در واقع خودش هم کاری نبود چون نمیتونست حتی نیم ساعت جای بند بشه و کاری رو به پایان برسونه. اگه زنش صبح زود بیدار میشد و، آتیش روشن میکرد بلا فاصله از تختخواب میپید بیرون پا رهنه به طرف آشپزخونه میرفت و فریاد میزد دلت میخواد خونه رو به آتیش بکشی، آتیش فراوانی که درست کرده برای پختن یه گاوم کافیه این روزا هیزم خیلی گرونه. اگه خدمتکار خونه رو میدید که کنار تشت ایستاده زیر لب چیزی و تکرار میکرد که از دیگران شنیده. اونو به باد ناسزا میگرفت و میگفت بیکار وایسادی کشی چرت و پرت میگی و قیبت میکنی و وظیفه اصلی تو فراموش کردی؟ این همه صابون مصرف میکنی بازم ها روی لباسا باقی میمونه. لابد نمیخواد دستت خسته بشه که رختار و درست چنگ نمیزنی. بعد از گفتن این حرفها، عصبانیتش به اوج میرسید و بی اختیار ضربهی به تشت میزد. آب و صابون روی کف بازخونه میریخت و کف بازخونه مثل حوز میشد. یه روز در نزدیکی خونه اونا خونه تازه میکردند اون به طرف آشپزخونه رفت. سرک کش و با خودش گفت: اینا رو باش. دارن از سنگ ماسه‌ای قرمز استفاده میکنن که هیچ وقت خشک نمیشه. با این سرعتی که سنگا رو روی هم میچینن، هیچکس جون سالم از این خونه به در نمیبره. ترکیب ملاتش هم خوب نیست. باید به جای ماسه شن به کار ببرن. شکی نیست که این خونه بالاخره روی صاحبش خراب میشه. اون این حرفا رو زد و دوباره به مقازش برگشت یکی دوتا بخیه به یک کف زد اما دوباره مثل فنر از جاش پرید پیشبندشو انداخت و گفت باید برم بهشون تذکر بدم وقتی کفاش وارد خونه شد دید نجارا کارشونو شروع کردن رو کرد به یکی از اونا و گفت داری چی کار میکنی؟ چوب باید در خطی مستقیم بریده بشه؟ اگه فکر میکنی که سوتونا همیشه قرص و محکم باقی میمونند اشتباه میکنی. اونها هم ممکنه مثل تیرکای افقی کج و مواج بشن. بعد چنگ زد و تبر رو از دست یکی از نجارا بیرون کشید تا بهش نشون بده که چطور باید الوارو ببره؟ دست برغز و درست در همون لحظه یه گاری پر از ماسه از کنار ساختمون رد شد. استاد کوبلر تبر را به طرف گاری پرت کرد و بر سر روستایی گاریچی داد زد و گفت چقدر غیر انسانی رفتار می کنی؟ خجالت نمی کشی کمسن کم سن و سال و به این گاری سنگین بستی؟ حیوان زبون بسته از نفس میافته. گاریچی جوابی نداد. راهشو کشید و رفت. کفش با عصبانیت سر کارش برگشت. همین که خواست کار نیمه کارش رو شروع کنه پادوی مغازش نزدیک اومد و لنگ کفشی بهش داد. استاد با دیدن کفش هوار کشید چند دفعه باید بهت بگم که فاصله دو تا بخیه نباید انقدر زیاد باشه. چند نفر حاضرن چنین کفشیو و بخرن که تخت اون چند روز بیشتر دوام نداره. از تو میخوام دستورات منو مو به مو اجرا کنی. پادو گفت. بله استاد حق با شماست این کفش ناجور و بیارزشه ولی این لنگ کفش رو خود شما دوختین. وقتی داشتین بیرون میرفتین اونو زیر میز انداختین من اونو برداشتم و نزد شما آوردم حتی فرشته های آسمونم نمیتونن شما رو قانه کنند که در کارتون اشتباه میکنین یکی دو شب بعد استاد خواب دید که مرده و راهی بهشت شده وقتی به بهشت نزدیک شد در زد. هواری پتروس اومد و درو باز کرد تا ببینه کیه. پتروس مقدس گفت: "آهان، استاد کوبلرسال شما این. ما به شرطی به شما اجازه ورود به بهشت میدیم که در هیچ کاری دخالت نکنید. اگه دخالت کنید، وای به حالتون." استاد جواب داد: "خیالتون راحت باشه." من متوجم شکر خدا که در بهشت همه چیز رو به راهه و در اون زندگی مثل روی زمین اینقدر آشفته نیست. اون با گفتن این حرفها اجازه گرفت وارد بهشت شد و در فضای فراخ اون شروع کرد به قدم زدن و بالا پایین رفتن. بعد از اینکه بهشت بهشتو کاملا برانداز کرد سرشو تکون داد و زیر لب گرگر کرد. در همون لحظه چشمش به دوتا فرشته افتاد که یک تیر چوبی رو حمل می کردند. درست شبیه همون تیر چوبی که یه بار اون با برادرش اونا رو جابجا میکردن. اون موقع ذره ای از نرمه چوب در چشم برادرش فرو رفته بود. فرشته ها به جای اینکه تیر چوبی رو از طول بگیرن از عرض چوب و گرفته بودن و حمل کردند. استاد با دیدن اون صحنه زیر لب گفت، <مش> چه کار احمقانه ای؟ اما خودشو کنترل کرد و دیگه چیزی نگفت. چه مستقیم چوبو می بردند چه اونا از ارزش گرفته بودند؟ نباید دخالت میکرد. بعد دو تو فرشته دیگر رو دید که با ظرفی پر از سوراخ میخواستن از چشم آب ببرند. آب از داخل ظرف مثل بارون بر زمین میریخت. نزدیک بود استاد فریاد بزنه جلل خاله؟ اما بازم یادش اومد که باید ساکت باشه و دخالتی نکنه. اون با خودش فکر کرد شاید این کار یه نوع تفریح و سرگرمیه. شاید در بهشتم آدما وقتشونو وقتشون رو به بتالت میگذرونن. استاد به راهش ادامه داد تا به یه گاری رسید که چرخش در گلولای گیر کرده بود. به گاری چی گفت؟ جای تعجب نیست، چه کسی ممکنه توی این گاری این همه بار سنگین بریزه حالا چه باری توی گاریته گاری چی جواب داد آرزوهای آدمای ریاکار چون نمیتونستم اونا رو از جاده صاف ببرم از این طرف آوردم تا اینجا تونستم گاریو بکشم اما از اینجا به بعد مشکل شده در همون دم فرشته اومد و یه اسب دیگه به گاری بست استاد فکر کرد، باشه، دو تا اسبم برای کشیدن گاری کافی نیست. دست کم چهار تا اسب لازمه. فرشته دیگه اومد و دو تا اسب آورد. اما به جای که اونا رو به جلوی گاری ببنده، به عقب گاری بست. بستن اسب به عقب گاری برای کوبلرسال کاری غیر قابل تحمل بود. فریاد زد و گفت، این چه کاریه؟ هرگز در هیچ جای دنیا اتفاق افتاده که کسی اسب و پشتگاری ببنده؟ تو انقدر مقروری که فکر میکنی از من بیشتر سرت میشه؟ کوبلر سال داشت همچنان به پرگویی خودش ادامه میداد که یکی از ساکنای بهشت با یک پسگردنی محکم اونا از بهشت روند. بیرون دربازه بهشت استاد سرشو رو برگردوند و دید که گاری با چهار اسب بالدار از جا کنده شده و به راهش ادامه میده. استاد از خواب بیدار شد و با خودش گفت مثل اینکه اوضاع احوال بهشت با اونج در زمین میگذره خیلی فرق داره. از طرفی چطور ممکنه آدم شاهد یه گاری باشه که دو تا اسب جلو بسته شده باشه، دو تا عقب درسته که اونا بالدار بودن ولی من اول دقت نکردم از طرف دیگه مقانه به نظر میرسه به عصبی که روی چهار تا پای خودش ایستاده دو تا بالم اضافه کنن. به هر حال بهتر بلند بشم و برم به اون خونه نوساز سری بزنم وگرنه اونا اشتباهات بیشتری انجام میدن. با این همه چقدر خوبه که من نموردم و هنوز زندم و به همه اشتباهاتشون رو گوستد میکنم سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها طبیعت های زیبا و ناب،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 با اصفهای تندرو و جادویی به سرزمین‌های ناشناخته قصه های دیو و غول و پری رشادت های قهرمان های قصه ها همه و همه و همه, همه, و همه در کانال ترگرامی هزار افسان داستان های افسانه صوتی ادساین مهران دوستی